ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا هست ایمان به ارسیه رسول خاتم هست خب این ایمان و تکیه کردن به خدای متعال مقدماتی داره مهمترین مقدمش عمله اون هم عمل صالح لذا در 58 آیه از 879 مورد که در قرآن از ریشه امنه و مشتقاتش استفاده شده با عمل صالح همراه امن و عمل و صالحات عمل رو قرینه ایمان قرار داده ایمانی رو خدا درخواست میکنه که بدون بارش عمل صالح هست نشون میده که ایمان فقط یه سلمو خوشایند نیست. داره وقتی عرب دیگه به سختی افتادن دیدن قدرت مسلمان ها زیاد شده پیامبر در مدینه حکومت تشکیل داده و مسلمان ها زیاد شدن بعض از قبائل که تا اواخر مثلا سالهای 8 و نوه هجری مقاومت میکردن مدن ایمان آوردن به ظاهر بزرگتراشون که بهشون مگفتن و بفود بزرگتراشون اومدن به نمایندگی از قبائل و اظهار اسلام کردن پرسیدن باید چیکار کنیم حضرت می گفت شهادتین بگید مسلمان میشید یکی هم همراه می کرد با اون نماینده قبیله یکی از مسلمان هایی که توانشو داشت میراث اونجا به ایشون احکام دین رو احکام اولیه‌ی دین رو یاد میداد و اینها مسلمان می شدند در یک همین این تاز مسلمان هایی که تا اندازه به زور هم مسلمان شده بودن مدن اظهار کردن ادعا کردن قالت آمن نه. گفتن ما همه مومن بیت توی پیامبر هستیم و ایمان داریم بیت پیامبر خیلی حرف رو برای اینکه اونها رو از خودش دور نکنه خودشون نمیزدن آیه نازل می شد، ایشون به عنوان مأمور، به عنوان رسول، واسطه بین خدا و خلق خدا بود، آیهات رو میخوند؟ خوند. آیه نازل شد که به اینها بگو که قولو اسلم نام. بگید ما اسلام بوردیم. نگید ایمان بوردیم. چرا که قبول کرده بودن به ظاهر، که خدایی هست و این فرد رسول اون خداست اما هنوز ثابت نشده بود که ایمان آوردن یا نه ایمان تصدیق قلبی است اسلام قبول لفظی است اینکه میگه من مسلمانم راست میگه یعنی اگر, اگر بپرسن ازش خالق تو کیست میگه خدای متعال بهش یاد دادن اینم میگه پیانبرت کیست میگه پیانبر خاتم مذهب چیه؟ میگه مذهب مثلا شیعه 12 امامی به ساحه هستن این مسلمان پاک خونش محترمه مالش محترمه اما اینکه مؤمن هم باشه معلوم نیست. مؤمن یک صفت درونیه. یه صفت قلبیه. بعضی‌ها به تصدیق مطلق معنا کردن. تصدیق منظور تصدیق ذهنی نیست. خیلی اصلا فیلسوف بودن. یعنی واجب بودن خدا رو و واجب وجود بودن خدا رو نه اینکه بلد بوزم تدریس میکردن، صاحب نظر بودند در استدلالهای که برای واجبیت وجود خدا مطرح میکردن اما ایمان نداشتن، مؤمن نبودن تصدیق میکردن اقلا، ذهنم تو فکرشون تصدیق میکردن و این تصدیق با استدلالهای سنگینم این نیل این می برانوس دیوین همه رو دنبال می کرد پشت سر هم ثابت میکرد که خدا واجب است وجود داشته باشد. اما در بود خدا اعتقادی نداشت واجب بودنش رو ثابت می کرد. اما اینکه خدا هست و یک سپاتی دارد ما باید به دنبال اون سپات باشیم این رو، اعتقادی هست این قبول نداشت پس تصدیق که معنای ایمان میگن هست لغویون منظورشون تصدیق قلبی است مؤمن اون کسی هستش که به زبان اسلامش رو اظهار میکنه در عمل ایمانش رو کسی که مؤمن است نشانه عملی داره پس این میگن قلبت باید پاک باشه عملت رو خیلی مهم نیست این یه برداشت کاملا ناسحیه انسان باید ظاهرش درونش رو نشون بده بلخواه دیگران که مقابل هستن تکریبشون رو باید معلوم کنن ادعا خیلی زیاده اما اونی که مشخص میکنه اون ادعا رو ثابت می کنه عمل انسانه لذا عمل ملاک هست برای ایمان عمل نشون میده که این شخص مؤمنه یا مؤمن نیست طرف مثلا لباس انشنانی می پوشه ولی میگه من قلبن نظر خاصی ندارم نظر بدی ندارم من خدا را قبول دارم، نمازم میکنم، کنم، اما خب پنی اینجوری دوست دارم اینجوری بگردم این نمیشه مؤمن کسیست که قلبا تصدیق میکنه، تصدیق قلبی یعنی باور قلب همون روحه تصدیق قلب و روح یا گاهی میگن نفس این تصدیق همون باور هست صغرا و کوبرا نمیاره نتیجه میگیره که ذهنی میشه بلکه اون باور قلبیش ایمانش رو تشخیص میده و در واقع تعیین میکنه حالا ایمان به هرچی که داشته باشه گاهی ایمان داره که مثلا فلان گروه اومونیس به حقه میگن این به اونها مؤمنه این نشناسه میگه تابع اوناست ببینید تابه اونهاست، یعنی عملاً با اونها سیر میکنه که فکرش و که رفتارش رو با اونا بسته بگه بله این مومنه با اونهاست. نمیتونه بگی من قلبم با شما هم بعد بیاد تا چرا روشن میشه. بسانی الله مسال الله محمد و حال محمد توده یادی سیدیشون اینجا بودن برای اینکه بتونن مثلا از اولوف و برم زندگی ظاهریشون رو درست کنن با اونها چون قدرت است اونها افتاده بود جمعه اونها پر پررنگتر شده بود یه زمانی اه... می گفتن ما هم تودهی هستیم خب تودهی ها قبول ندارن نه، خب ما هم نداریم خب نماز نمی کنن ما هم نمی کنی. خب می زندگیش به چرخه اما خب در قلبش مؤمن به علی اولاد علی بود مؤمن به پیام بر بود لزاب همین که مثلا برق اومد معروفه میگن جز جمعشون صلوات فرستادن <تصفيق> اون توده یک بابا باب این دیگه چه بضاعتیه اونم بوده بودن پول اینو میگیرم برن این رو نمیگن مؤمن اونی که قلبش میگه اون ایمانشه و اون چیزی که قلب میگه در رفتار نمایان میشه حتماً و الا ایمان نیست تصدیق قلبی نیست تصدیق قلبی که در اسلام مطرحه تصدیق و باور این هست که خدا هست و باید ازود پیروی کرد این رو میگن ایمان قلبی نسبت خدا و اسلام این باور که باید خدا رو قبول کرد و بهش تأسیی کرد از چه راهی با ایمان به رسول ایمان به خدا و ایمان به رسول در قرآن کنار هم لذا اومده ایمان به خدا رو که نمی‌شه فهمید واقعی یا نه من از کجا می‌دونم مثلا طرف مقابلم یا شما از کجا می‌دونید که من راست میگم از عملم باید راستیابی کنید اگر تأسیی به خدا پیدا کردم و بای دستوراتش که از راه رسول و ارسیا رسول هست معلوم میشه که من مؤمن به خدا هستم و مؤمن حقیقی حقیقیم لذا ماها رو بهمون همون میگن مثلا عبدالحسین عبدالرزا عبدالی عبدالی هستیم رضا هستیم میگه مگه تو خدا را قبول نداریم چرا؟ به چطور عبد امام رضا شدی؟ عبد امام جواد همونه علی شدی؟ میگه من در پرستش خدا رو یعنی باور دارم که این عالم خالقش خداست اما در رفتار عبد علی هستم عبد اولاد علی هستم من عملم رو و سبک فکرم رو سبک عملم رو از علی و اولاد علی می گیرم در تاعت عبد خدا هستم، در اطاعت عبد این بزرگوار هستم. لذا عبدالله که میگن یعنی عبد تاعتی خدا، عبد الرسول، عبدال، عبدالجواد، عبدالالی، این بندگی اطاعتی این بزرگوار در عمل از اینا یاد میگیرم. قولشون، عملشون، برای من درس و پیروی میکنم از اون لذا، میگن فلانی، عبد فلانیه یعنی چی؟ یعنی متی میگه آب بیار، آب میاده، میگه من برو، بشور هر کاری که داره تا دستور میده و عمل میکنه، اینو یعنی میگن عبد ما هم هر چی این بزرگوار میگن به عنوان کلام خدا میدونین بزا میشیم عبد اینها عبد اطاعتی عبدی که از اونها اطاعت میکنیم و مطیع اونها هستیم بزا فخر ما این هستش که عبد علی باشیم عبدالرضا الرزا باشیم مثلا پس ایمان همون تصدیق قلبی هست و تصدیق قلبی نشاید مگر به عمل ظاهری هم عمل ظاهری ایمان قلبی رو ایجاد میکنه هم زیاد میکنه و هم به بیننده من نشون میده که من عبد خدا هستم عبد در راستای تاسریب اسلام هستم و ایلا اگر هر کاری که عرف میپسنده مووریا میپسندن، سایتا میگن مدلی جدید من اونجور بپوشم، اونجور زندگی کنم، سب که فکرم رو و سب که رفتارم رو با اونا تنظیم کنم، میگم قلبم اونتا با خداست، قبل قلبم با امام حسین، نمیشه این تصدیق قلبی نیست، یه ادعاییز و انسان خودشو سرگرم کرده